فصل نهم فلسفه قرن بیستم قرن بیستم نخستین دوران پس از قرون وستا بود که فلسفه مهم همه دانشگاهی بودند تا اندازه بدین سبب توجه فضایندهی نسبت به تحلیل پدید آمد در دورشته تحلیل منطقی و تحلیل زبانی پیشرفت‌ها چنان شگرف بود که در تاریخ پیشین این موضوعات کسی چنین پیشرفتی را حتی به خواب هم نمیدید. فزون بر اینها بزرگترین پیشرفتها در دو جپه روی داد. یکی واکنشی بود به علم قرن بیستم که نوعی ارزیابی مجدد کیفیت شناخت بشری را ضروری ساخت. دیگری کوششی بود برای درک وضع انسان در جهانی که دیگر آفریده خدا انگاشته نمی و مفهوم یا مقصودی از آن خود نداشت. بخش اول فرگه و منطق جدید منطق نقش کلیدی مییابد در اوایل قرن بیستم پیشرفت هایی در منطق روی داد که بر تمامی فلسفه تأثیر نهاد. نکات اصلی دستگاه منطق عرستو تا قرن نوزدهم دست نخورده ماند. در این زمان منطق را قوانین حاکم بر اندیشه میپنداشتند. به گفته همان گونه که نمیتوان دست و پا را در جهت مخالف مفصلها خم کرد، اندیشیدن منطقی بدون پیروی از این قوانین نیز نامویستر است. به هر تقدیر، در اواخر قرن 19 مردی آلمانی به نام گوتلوب فرگه متولد 1848 میلادی و در گذشته به سال 1925 به بینشی دست یافت که این تلقی از منطق را برانداخت. و تحولاتی انقلابی در موضوع پدید آورد منطق نیست. این بینش هم مانند بسیاری از فکر‌های بزرگ و مهم دیگر همین که بر زبان آمد بدیهی نمود و حالانکه که هیچ وقت بدیهی به نظر نرسیده بود مطلب از این قرار است چیزی از چیز دیگر یا در واقع لازم می‌آید یا در واقع لازم نمی‌آید. و چه لازم بیاید، چه نیاید، این امر هیچ ارتباطی با روانشناسی آدمی ندارد. به زبان دیگر، منطق به هیچ وجه قوانین فکر نیست و در حقیقت به فکر ربطی ندارد. روابط منطقی مستقل از فکر آدمی است. البته، موجودات بشر می توانند این روابط را بشناسند، آنها را بیاموزند، نادیده بگیرند، بد بفهمند و غیره و غیره. ولی این حالت ها می تواند در مورد بسیاری چیزهای دیگر هم که مستقل از ما وجود دارند رخ دهد. ده نکته این است که گزاره های منطقی حقایق اینی هند. ما ممکن است آنها را در یابیم یا در نیابیم ولی وجود آنها هیچ ارتباطی با هیچیک از وجوه تفکر آدمی ندارد. وقتی این بینش در مورد فلسفه عمومی به کار رفت پیامدهای بااهمیتی با اهمیتی داشت. از زمان دکارت به این طرف، پرسش من چه میتوانم بدانم بر فلسفه غرب سایه انداخته بود. نظریه شناخت همان معرفت شناسی میداندار اصلی بود و این یعنی آنکه موضوع عمده تحقیق چیزی است که در ذهن افراد میگذرد. نتیجه بینش فرگه، رهانیدن فلسفه از روانشناسی بود. اگر آنچه که هست، و آنچه که از چیز دیگر لازم می آید مستقل از ذهن انسان است؟ پس درست نیست که کوشش ما برای فهم جهان بر معرفت شناسی متمرکز شود. لازمه واضح این سخن آن است که فلسفه باید قائم بر منطق باشد نه قائم بر معرفت شناسی. و کار فرگه، درآمد تغییراتی بود در این راستا که در سر, و سر قرن بیستم در بسیاری زمینه های اصلی فلسفه همچنان ادامه یافت. ریاضیات منطق است. دستاورد بزرگ دیگر فرگ درباره فهم ما از ریاضیات بود. ریاضیات البته تقریبا یکسره عبارت است از چه چیز از چه چیز لازم میآید؟ و براهین و استدلال ریاضی، مانند همه براهین و استدلال های دیگر میباید از جایی از مقدماتی شروع شوند و برای عبور از این مقدمات میباید دستکم یک قاعده عمل هم داشته باشند همانطور که پیشتر گفته شد برهان نمیتواند صحت مقدمه خود یا قواعد عمل خود را اثبات کند زیرا در این صورت به دور باطل میافتد. چون چیزی را که در صدد اثباتش است قبلا مسلم انگاشته است. به عبارت دیگر هر برهان ریاضی از مقدماتی اثبات نشده آغاز می شود و قواعدی را به کار می برد که صحت آنها را خود اثبات نمی کند. بنابراین چیزی را که برهان ریاضی معتبر در واقع به اثبات می رساند این است که با در نظر گرفتن آن قواعد عمل این نتایج در پی آن مقدمات می آید. این به معنای اثبات صحت آن نتایج نیست چون برهان ریاضی صحت مقدمات را نمی ثابت کند و از آنجا که این بدون استثناء در مورد همه براهین و استدلال های ریاضی مصداق دارد کل ریاضیات را باید به گونهی معلق و پا در هوا بدون هیچ تکیه‌گاه مشهودی در نظر گرفت فریگه کار خود را با علم حساب شروع کرد و هدفش آن بود که نشان دهد همه مفروزات مفروضات و قواعد به اثبات که بنای ریاضیات را سر پا نگه می‌دارد می‌تواند از اصول بسیار مقدماتی منطق استنتاج شود این یعنی اعتبار بخشیدن به ریاضیات به عنوان مجموعه‌ای از حقایق ضروری به دست آمده از مقدمات صرف منطقی هدف قرار دادن ریاضیات بر شالوده های مستحکم بود اما این برنامه دو دسته آثار جنبی داشت که هر یک حائز اهمیت تاریخی بود اگر تمامی ریاضیات را بتوان به شکلی ضروری از منطق استنتاج کرد، پس همان گونه که میتوان گفت ریاضیات جزی از منطق است، به همان ترتیب میتوان گفت منطق جزی از ریاضیات است. در هر صورت، آنچه در طول بیش از دو هزار سال تمامی منطق شمرده شده بود، کاشف و ملامت که فقط گوشه کوچکی از منطق بوده است. در پرتو این احتمال، مطالعه منطق در معرض دگرگونی قرار گرفت و برشتهی وسیع و بسیار فنی مبدل شد که با ریاضیات همپوشانی دارد و امروزه در همه دانشگاه های مهم جهان همین گونه تدریس و تحقیق می شود. اثر جنبی مهم دیگر این بود که اگر ریاضیات با منطق هم است در آن صورت زدودن روانشناسی از منطق خود به خود پای زدودن روانشناسی از ریاضیات را نیز به میان میکشد در طول تاریخ ریاضیات، منازعه ای درباره ماهیت بنیادین آن جرایان داشت، بین کسانی که ریاضیات را مانند زبان محصول ذهن انسان می دانستند و آنهایی که میگفتند ریاضیات وجود فی نفس مستقلی دارد. چنانچه برنامه فرگه با موفقیت انجام می گرفت، منازعه به سود دسته دوم فیسلمی پذیرفته. شهرت دیرهنگام فرگه ریاضیدان بود و تمام عمر کاری طولانیش را در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه ینا گذرند. با آنکه کشفیاتش را منتشر کرد، مدرسان فلسفه دانشگاه های آلمان نوشته های او را نخواندند، چون همه در آن زمان سخت در چنگ ایدالیسم آلمانی گرفتار بودند و به همین سبب اعتقاد راسخ داشتند که ریاضیات محصول ذهن انسان است. و در جهان انگلیسی زبان هم که به هر حال فقط معدودی افراد زبان آلمانی می‌دانستند از این کشفیات فرگه سالیان زیادی اطلاعی در دست نبود بدین سبب فرگه بارورترین سال‌های عمرش را در گمنامی گذراند و سرانجام هم یک نفر انگلیسی یعنی برترند راسل بود که او را کشف کرد و کار او را شهرت همه جهان هم ساخت هرچند این موقعی بود که راسل خود مستقلن مقدار زیادی کار دشوار در این زمینه انجام داده و چیزهایی را که فریگه قبلا کشف کرده بود از نوع کشف و از نوع ابداع کرده بود. راسل پیش از آن که به فلسفه آورد در کمبریج آموزش ریاضی دیده بود و چون در کودکی دایه آلمانی زبان داشت پیش از آن که انگلیسی یاد بگیرد آلمانی حرف می زد. همه این عوامل، راسل را قادر ساخت کاری را که او و فریگه مستقل از یکدیگر آغاز کرده بودند در هم میزد و تکمیل کند. و شاید بتوان گفت که راسل با بست پیامدهای منطقی آنکار به سراسر گستری فلسفه با نفوزترین فیلسوف قرن بیستم شد.